حکایت دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب افتار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند هر دو را به خانه کردند و در به گل برآوردند بعد از دو هفته معلوم شد که بی گناهند در را گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت پرده مردم در این عجب موندند حکیمی گفت خلاف این عجب بودی آن یکی بسیار خار بوده است طاقت بی‌نواهی نیاورد به سختی هلاک شد ویندگر خیشتندار بود است. لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را چو سختی پیششاید سهل گیرد. وگر تن پرورستن در فراخی چو تنگی بیند از سختی بمیرد. تنور شکم دم بدم تافتن Måsivat på vad rosen na i